چرا ندر پیه عزم دیار خود باشم چرا نخاک سر کوی یار خود باشم غم غریبی و قربت چو بر نمی به شهر خود ربم و شهر یار خود باشم زه مهرمان سرا و شوم؟ و بندگان خداوندگار خود باشم چو کار عمر نپیداست باری آن اولا که روز واقع پیش نگار خود باشم ز دست بخت گران خواب و کار بیسا و من گرم بود گلهی رازدار خود باشم همیشه پیش من عاشقی و رندی بود دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم بوعد که لطف ازل رهنون شود حافظ وگر نہ تاب عبد شر سار خود باشم